اذ وَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي غَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَاعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آيه شریفه 186 از سوره مبارکه بقره که دو جلسه تا کنون توفیق پیدا کردیم در خصوص این آیه سخن بگیم امشب هم ببینیم تا چه میزان توفیق شامل شود که بحث رو پیش ببریم عرض کردم با توجه به خود ظاهر آیه و شعن نزول آیه که شیعه و سنی بالاتفاق نقل کرده آیه در خصوص دعا و خوندن پروردگار است که شخصی با صدای بلند خدا را میخوند از پیغمبر سوال شد که خدا را بخانیم چگونه بخانیم دور است که با صدای بلند بخانیم نزدیک است با حتی مثلا تو دلمون خدا را بخانیم این آیه شریف نازل شد و اذا سعلک که عبادی انی وقتی که از توی پیغمبر عباد من در خصوص من سوال میکنن انی غریبون پس درش مستطر حذف ما یعلم صورت گرفته بگو به اونها تفهیم کن به درستی که من غریبون نزدیکم اجیب و دعوت الداعي دعان اجابت میکنم دعوت کسی را وقتی که مرا میخواند پلی استجیب لی پس باید مرا اجابت کنند و ایمان به من بیاورن باشد که رشد کنن راه بیابند و تعالی پیدا کنن قسمت تفسیر کلی آیه با توجبه مزامین تفاصیر مجمدی بیان شد جلسه قبل مطالب پایان جلسه قبلترش رو که به اینجا رسندیم یکی از ارزشها در فرهنگ الهی به خصوص در فرهنگ تشیع مسئله دعا انابه سوز و گداز توسل به حضرت حق است اگر کسی بخواهد همه اونچه که در روایات آیات در خصوص دعا آداب دعا شرایط اجابت دعا علت عدم اجابت دعا و و جممندی کند و بحث کند زمان بسیار مفصلی رو می طلبه ولی مجملی از همه اونها رو کلی بیان کنیم <تصفح> می توان این مسائل رو مطرح کرد دعا چیست؟ چرا دعا؟ چگونه دعا کنیم؟ و چرا گاهی دعاها به اجابت نمی دعا چیست؟ جلسی قبل مقداری تقریباً بحث شد دعا خوندن است خوندن بالاتر پایین را نه خوندن همعرض همعرض را نه خوندن پایین بالاتر رو که این خوندن پایین از بالاتر کنایه از مدد جستن کمک تلبیدن پناه بردن دست نیاز به سوی او دراز کردن و تزلل و خشوع رو مطرح کردن بود و دیدیم که اگر دعا به این معنی بین ما بندگان و پروردگار عالم مطرح می شود و بشود بندگی عبودیت و اظهار نیاز ما را نسبت به حضرت حق نشون میدهد که خود این یکی از عوامل ارزنده تکامل و تعالی است که بحثش گذشت کاری ندارم دوم دعا وسیله قرب است دعا چیست؟ گفتم خوندن خوندن پایین از بالاتر این خوندن پایین بالاتر را یک تزلل است خشوع است خضوع است در جنبه مختلف نظری و عملی که معلوم شد دوم عامل قرب است حدیثی رو جلسه قبل پایان جلسه سریع قرائت کردم گفتم روش هفته آینده که امشب باشه باید بحث کنیم اگر انایت فرموده باشید به حدیث شماره ششم اصول کافی جلد دوم صفحه 467 که سمع تا عبا عبدالله علیه السلام یقول علیکم به دعا شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرمود بر شما با دعا کردن دعا کردن اهل دعا باشید فانکم لا به بمثله چیزی مثل دعا باعث قرب شما نمیشود ببینید چیزی شما را به قرب حق مثل دعا نمیرساند این حدیث حالا احادیث که در این زمینه فراوان اگر عرض کردم دو دعا وسیله قرب است دعا ما رو به خدا نزدیک میکنه اینجا حالا دوتا بحث مطرح کنیم. یک، قرب چیست؟ دعا چرا وسیله قربه؟ در ادامه بحث دعا با شرایط و زوابط اگر نباشه همونطوری که به اجابت نمیرسه وسیله قرب میتونه باشه؟ در واقع دعا نیست. نه، مثل اینکه مثلا از امام صادق علیه السلام پرسیدم مگر نماز تنها ان الفحشاء و المنکر نیست بیان خداست این نسلاته تنها ان الفحشاء و المنکر نماز شما را از فحشا و منکر باز می دارد خب ما بعضی ها می بینیم نماز می خوانن. از فحشا و مونکر باز داشته نمی شوند. پس چیه غضیهه البته من قبل از اینکه فرمایش امام علیه السلام را ارز کنم یه تذکر اینجا حتما لازم ارز کنم برخی میگن بعضیا که نماز میخونن دروغ میگن نماز میخونن مال مردم میخورن پس چه نمازی ما نماز نمیخونیم خب شما نماز بخون دروغ نگو شما نماز بخون مال مردم نخور اگه از مال مردم خوردن و دروغ گفتن بیزاری از این که بیزاری فاصله بگیر از نماز خوندن بیزاری که بین خود و خدا میخوای دروغ گفتن و اون فرد رو بهانه کنی نماز تو بذاری کنار تو نماز تو بخون دروغم نگو به دیگران هم نشون بده میشه این کارو کرد این اول ارزو کنم حالا بریم امام علیه السلام با مثال توزی دادن فرمودن اگر کسی شبان روز پنج بار در یک آبی خود را شستشو بدهد در این حال چرک و آلودگی در بدنش باقی بمانه شما چی میگید؟ بگید شستنش سطحی بوده ناقص بوده یه رفته زیر آب و انگار مثلا مخواسته الان من میگم با آب بازی کرده اومده بیرون این شستشونه نداده خودش رو نمازی هم که به خانه تنها عن الفحشای والمنکر نماز تنها ان الفحشای و داره. این نماز نیست در واقع دعام هم اینطور میگه دعا میکنیم گاهی دعا هست اجابتش اونی که ما میخوایم نیست اجابتش چیز دیگه است. اونو بعد عرض میکنم اما دعا باشد اجابت نشود نداریم لذا در روایت اومده مطمئن باشید حتی اگر جواب دعای شما را در دنیا ندادن در آخرت بهتون میدن حالا نگید که این وعده سرخرمن است و بالاخره در مذهب میخوان یه جور اینا همه رو انشالله بحث میکنم ولی اینجا به عنوان یک شاهد فعلا از روایت خواستم عرض کنم اتفاقا اگر دقیق بشیم گاهی در همین دنیا کما اینکه که قضایای آخرت رو برای ما که بیان میکنن یکی از اسامی روز قیامت یومل حسرست امام علیه السلام فرمود حسرت فقط برای گنهکاران نیست یا الحسره برای متقینم است، برای متدینین و مؤمنین است حسرت میبرن ای کاش بیشتر به فکر آخرت بودن ای کاش بیشتر برای آخرتشون کار میکردن لذا اگر کسی توجه به اون معانی پیدا کند گاهی دلش میخواد که مبتلا بشه دعا کنه برای آخرت حتی اجرش خدا تو دنیا نده این حدیث در جلد شست و چهار بهار صفحه دویست و سی و اومده علی علیه السلام فرمودند ان گاهی خداوند ظالم رو مبتلا میکنه این باعث ادبش بشه آقا جون ظلم نکن این گوشمالی مثل معلمی که رو نمیخواد از کلاس بیرون کنه میخواد بهش توجه بده تو هنوز امیده به رشد دارم اما جریمت میکنم گوشمالید میدم چنین چنان که تو را بیایی اما اگر از حد گذشت دیگه اطلاع ابتلام برایش قرار نمیده آزمش ندید کاری با شما ندارم این البلا ظالمه ادبون، ظلم کرده حالا ظلم درجات مختلفی داره میتونه حتی ما اگر بخوایم کار حضرت آدم عبالبشر علیه السلام و سلام رو ترک اولا بدانیم بعضی میگن ترک اولام نبوده چون عالم تکلیف نبوده ولی همینقدر که ولا تقربا زه شجره فتکونا مناز ظالمین تو دعای کمیل هم ظلمت تو نفسی که از میتونه اون مطالبه به هر حال نسبت به اون ظلم گاهی بلا پیش میاد که ادب بشه در عدب داده شده که میرسیم بهش یکی از عوامل ادب شدن دعا کردن دعا آدمو ادب میکنه حالا ارد میخواد حاصل کنه تا در این ادب عرض کنه وللمؤمنه امتحانون گاهی ابتلا مال ظالم نیست مال مؤمنه و از ذن اברהیم ربه بکلمات الف لام میم احسب الناس ای تترکو یقولوا امن وهم یفتنون مؤمن مبتلا میشه ابتلای مؤمن برای اینه که امتحان بشه در این امتحانات پخده تر بشه قوی تر بشه نقاط ضعف خودش رو خودش پی ببره متوجه بشه کجاهای کار میلنگه کجا من ضعیفم اونجا رو انگوش بگذارم بیشتر خودم و در اون زمینه تقویت کنم شما توی امتحانات مثلا فرض کنید آزمایشی کلاساتون توی امتحانات ورزشی توی مراحل خاصی میاد یه مرحلهی بعد از جلسه با خودتون خلوت میکنید من توی این امتحان ورزشی فلان جاها مشکل داشتم من توی این امتحان تمرینی علمی فلان جاها امتحان آدمیت گزرگاه قرور گزرگاه حسادت گذرگاه غیبت گذرگاه امید به مردم خیلی مهمه در دعا اینا رو باید حالا پیش توجه کنیم گذرگاه امید به مردم شرک افعالی و و یه وقت تا انسان تو ابتلا نیفته مبتلا نشه تو امتحانات قرار نگیره ممکنه ادعاش بشه ولی وقتی تو امتحان قرار گرفت گاهی میبینه هنوز اون انگیزه های غیر خدایی در وجودش به یه جهاتی او رو سوق میده نشون میده هنوز اون رشدی که بناس پیدا کنه پیدا نکرده اگر درجه از ظلم باشه داره ادب میشه اگر مؤمن داره امتحان میشه ولی درجه تون، انبیاء مبتلا میشن که درجهشون بالاتر بره ولی لعنبیاء کرامتون حالا در تمام این امور وقتی فردی مبتلا می شود در ابتلا خوندن خدا مطرح میشه شکل خوندن خدا که دعا میشه نحوه توجه به پروردگار که دعا میشه به اقتضای درجه معرفت اون فرد به خدا شکل خوندن خدا رو مطرح میکنه حالا قرب میخواد درست کنه چطور خب قرب مکانی که معنا نداره قرب زمانی هم که معنا نداره حالا اینجا این قرب یعنی چی من اجازه بدید یک روایت براتون بخونم این روایت رو در کتاب ب... بله در کتاب اصول کافی جلد اول حدیث نقل میکنه از امام صادق علیه السلام من حدیث رو امروز یادداشت داشت کردم ولی الان توی نوشته هام نگاه میکنم بله حالا از حفظ عرض میکنم دلم میخواست از رو بگم که کم و زیاد نشه عرض کنم امام علیه السلام در جلد اول اصول کافی حدیثی داره که روح مؤمن این روح المؤمن اشد و فرماید. اتصال با ساد که از کدم دعا عامل اتصال توسل با ساد گفتم خواهم از حدیث بگم امام فرمودن مؤمن روحش از نظر اتصال به پروردگار اشد و من شعاع شمسه الاش شمس شعاع شمس به شمس اتصالش چجوریه؟ اگر شمس رو شما در نظر بگیرید و شعای شمس رو شعای شمس منهای شمس اصلا هیچه میگه روح مؤمن اتصالش به پروردگار از اتصال شعای شمس به شمس بیشتر و شدیدتره. تره همین اصول کافی جلد یک صفحه سد حدیث مفصلیه به مناسبتی نمی من سلکهو راجب پیغمبر اسلام حدیث کسی که سلوک داشته باشه تیه طریق داشته باشه با اون طریقی که پیغمبر براش مطرح کرده و سلال الله عزبجل به خداوند متصل میشه روح اشد و اتصالن که هست سلوک نبوی رو به الى الله مطرح میشه در مناجات شعبانیه که همگی حنایت دارید الهی حبلی کمالل ال انقطاع الیک تا اونجا حتی تسله ارواحنا معلقتن به عز قدسک خدایا یه کاری کن کمکم کن موهبتی کن من یه جوری بشه حالا دارم نقل و معنی ارز میکنم که روح من اون چنان متصل به عز قدس تو شود که معلق به اون عالم باشه. پس میشه اتصال نباشه که میگه کاری بکن بشه. در جلد اول کافی صفحه سد داره حدیث نقل میکنه که اگر کسی سلوک نبوی داشت متصل میشود. اگر سلوک نداشته باشه متصل نمیشه. اون حدیثم که فرمود اشد دو اتصالن من شعاع شمسه الی شمسه پس اینا جنبندیش چی میشه؟ یعنی اگر مؤمن شدید به درجات عالیه ایمان رسیدید قربتون به الله به حدیث مثل شعاع شمس به شمس از او هم بیشتر متصلید چون روایات دیگر شاهد آوردم این روایت میگه سلوک نبوی داشته باشید و میشید مناجات شعبانیه که همه معصومین مقید بودن میگه خدایا کمکم کن به این اتصال برسم پس میشه این اتصال نباشه از اون طرف میفرماد روح مؤمن اتصالش اشده از شای شمس به شمسه پس قربه میتونه انقدر از نظر مقامی صفاتی ارزشی و ارزش عالم الهی بالا باشد که اد معنا پیدا کنه. اون چنان که راجع به پیغمبر میگیم دنا فتداللا فکان قاب غوسین او ادنا تا اونجا که اقترا. این غربه به حدی انگار دو سر حلقه هستی رو به هم پیوستی، داره به هم متصل میشه. خب در این حدیث امام علیه السلام میفرماید: دعا شما را به قرب حق میرساند. هیچ چیز دیگه مثل دعا شما رو به قرب حق نمیرسونه. خب اینجا دو بحث، یک چرا دعا به قرب حق میرسونه؟ چرا بقیه نمیرسونه؟ دو، نماز باعث قرب نیست، روزه باعث قرب نیست. چرا؟ پس چرا اینجا حضرت می فرمانی حدیثه؟ فَإِنَّكُمْ لا تُغَرَّبُونَ بِمِسْلِهِ شما قرب پیدا نمیکنید به از چیزی مگر مثل دعا خب یک جواب کلی اینجا دعا رو معنی عام بگیرید نمازم دعاست روزم دعاست همه خوندن هم خداست همه برای خداست ولی اگر دعا به معنی خاصش رو بگیریم نماز صلات معنی خاص خودش رو داره روزه معنی خاص خودش رو داره اگر اینجا معنی خاص خودش باشه چیه؟ خب دقیق بفرمایید شما چقدر روایت دارید خوشبختانه در جمعه ما قبلا اینا بحث شده کار دیگه ساده است قربه فرائض قربه نوافل قبلا داشتیم واجبات غربی که ایجاد میکنه به اقتضای عمل واجبی که ممکن از کسی بگه خدایا واجب کردی چشم انجام میدم خب اگه نکنم بله کتک تک میخورم جهنم میرم نمیشه فرض بفرمایید نماز شب واجب نیست چقدرم راجب نماز شب سفارش شده ارزش ها چه به یک بزرگی خدایش بیامرزه از مراجع بود یه وقتی خدمتشون بودم اده از طلاب جوان خدمتی ایشون بودن. ما مهمون بودیم. ما که توفیق طلبه بودن نداشتیم و هیچ روزی طلبه نبودیم. حالا هم نیستیم. طلاب خدمتی ایشون بودن. ایشون داشت موعظه می کرد به طلاب. به اونا می فرمود که درستون رو بچسبید خوب درس بخونید انقدر لازم نیست دنبال مستحبات باشید که از درس بیافتید شما الان دوران درس خوندنتونه به قدری سفارش تاکید تا... درس درس بخونید جدی باشید انقدر دنبال مستحبات نرید که یکی پرسید که پس نماز شبم نخونیم محمود چی میگید نه نماز شب که نمیشه طلب نخونه بعد شروع کرد توضیح دادن که خیلی برام جالب بود پرمودی مستحبات که میگن مثلا حالا نماز صبح خوندی میخوای بشینی یه جز قرآن بخونی شما الان توی مرحله از درس خوندنید که ممکنه این یک ساعت سروب بخوای تو اون وقت بشینی مباحثه کنی بازدهی بیشتر داشته باشه ولی چند تا از مستحباتی که اینا استثناسی یکیش نماز شبه بعد شروع کرد توضیح دادن ببینید نماز شب با همه عرضشی که در فرهنگ ما وارد شده چه آثار عجیبی داره به قول یه بزرگی یادم میاد میفرمود که اون نسخهی که برای هر درد روحی در مسیر قربعق و تکامل میشه پیچید این نسخه نماز شبه که قوغا میکنه خب واجب نیست امشب خالشو نداره. امشب خسته امشب خوابم میاد امشب چقدر زیاد ممکنه بشه ولی کسی که بالاخره متدینه امشب خستم نماز مغرب ها رو نخونم معنا نداره خب غرب فرائز مثل غرب نوافل بر مبنای ذات عمل است یا معرفت و انگیزه عمل کدومه؟ معرفت و انگیزه عمله معرفت من در انجام نماز مغرب امشب و اشای امشب خدایا واجب کردی اگه نکرده بودی که این من آلا داشتم نمیخوندم پس خیلی از روی همچین تسلیم محض عبودیت محضم نیست خدای تو واجب کردی نکنم چون این میشه ولی نماز شب رو یه وقت هست میگم خدایا. من اینو یک توفیقی میدونم برای نشانه عبودیت چشم میخونم ولو خسته باشم نمیتونم. پس از این جهت قرب نوافل که در کنار قرب فرائز امام صادق فرمود حتی بیشتر میتونه باشه همون موقع یادم بحث کردم نه یعنی فریزه رو رها کنیم به نافله بپردازیم این کسان حرامه یعنی کسی که به نافله مقیده قطعا فریزش شو قیده دقیقی داره از فریزه عبور کرده به نافله رسیده این قربش قرب بیشتریه دعا اگر به معنی خاص بگیریم واجب که نیست مثل نماز اما اگر معرفت دعا مطرح بشه دعا باشه حالا قرب دعا رو ببینید امام صادق فرمود چیزی اینجوری شما رو به قرب نمیرسونه. معرفت در دعا مثل معرفت در نماز و در هر عبادت دیگر بحث هفته قبل اینجا خودتون اضافه کنید ذلیلم ابدم حقیرم مسکینم هیچم همه چی اوست و میخوام دست به درگاه او دراز کنم و میشه خودم به او ارتباط بدم رفت بدم یه جوری رابطه برقرار کنم اگر با این معرفت دست به سوی آسمان بلند شه حتی گاهی دست بلندم نشه همچنان یه گوشه خلوت گزیده از اعماق جانش این توجه و عالم بالا و معنا داره ایجاد میشه الهی عبید که به بابک حقیر که به بابک مسکین که به بابک زلیل که به بابک شما رو به خدا دقت کنید حالا همینجا قرب می توضیح بدیم اگر این معنا واقعا تو فکر باشه نه لغلقه زبان و نه یک عادت باشه به معنی دعایی که از اعماغ فکر و جانم برمیخیزه حقیر و که مسکین و که زلیل و که کبر برمیداریم متکبر میشیم چه کسی متکبره؟ که برای خودش منی باشه وقتی من در دعا به این معنی توجه کنم من اصلا نیستم به امکاناتم می نازم در دعا از پایین به بالا این توجه رو داره می کنه غیر از تو هیچه به خصوص اگر در دعا حالا انشالله به این روایات برسیم یه مقداری بیشتر توجه به ما بده یه روایت همینجا به خونم دقت کنید مجموع البیان این مجلد اول که یک و دو با همه صفحه صد از امام صادق علیه السلام خیلی عدیس قشنگه زیبا دارید ما یمنه احد و کم ازا دخلا علیه قم من قموم دنیا چی باز می‌داره یکی از شما ها رو وقتی غمی از قمهای دنیا به شما را پیدا میکنه یه مشکلی براتون پیدا میشه امیتوزع سمید خلال مسجد وضو بگیره وارد مسجد بشه یه دو رکعت نمازی به جا بیاره ید الله حفیها در اون حال خدا را بخواند دعا کنه اما سمعت الله تعالی نشنیدید که خدا داره میگه یه قول وستعینو به و سلات امام صادق دارم استعینو کمک بگیرید به صبر صبر یعنی روزه و صلات یعنی نماز یعنی اینکه نماز و روزه رابطه بین شما با خداست درخواست کمک کردنه امام در رابطه با غمی از غموم دنیا، مشکلی از مشکلات دنیا، لذا از این جهت میگه پای سگ بوسید مجنون. خلق گفتا کن چه سود؟ گفت این سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است. اون غمی که دقت کنید. اون غمی که اون گرفتاری که اون ابتلا که اون مشکلی که انسان رو به خود بیاره غیر از او هیچی مطرح نیست این غم رو باید بوسید چون این احساس رو ایجاد کنه امروز داشتم به مناسبتی حالات مرحوم عاشمانتقی آمولی رحمت الله علیه رو میخوندم علامت دادم تو کلاس درسی دوستان جوون بیارم بخونیم منو منقلب کرد نمیدونستم این مطالب رو نمیدونستم انقدر این بنده خدا گرفتاری پشت سر گرفتاری مشکل پشت سر مشکل عذیت پشت سر عذیت که میفرمود من خود به قلم خودشونه در خط خودشونه که از روش چاپ کردن نوشته من با اینکه پدرم پیش نماز مسجد مجد بوده و در مسجد مجد اصلا توی اون موقوفاتش و این نوشتن یکی از اعضا پدرمه در این رابطه ساختن از بس ازیتم میکردن و با من حسادت می‌ورزیدند من بنا گذاشتم امام جماعت مسجد راه کنم یه گوشه بشینم بگم دست از سرم برمی‌دارید یا نه یه نمونه مثلا بعد البته مصائلی خودشون اینجا دارن که همین عوامل باعث شد که سر راه هم کسانی قرار بگیرن دست منو بگیرن چه کار خوندنی نیست خوندنی حالا اون غمی که اون مشکلی که اون ابتلای که انسان رو به این توجوبا داره غیر از خدا هیچ همه چی اوه به پول مینازم کاری نمیتونه بکنه به قدرت هم می نازم کاری نمیتونه بکنه به دوستانم مینازم واقعیتش اینه دیگه به دوستانم مینازم کاری نمیتونن بکنن به پارتی مینازم به چی به چی هیچ ازش کاری بر نمیاد و از اعماق جانم ناله برمی آورم الهی و ربی رب منلی غیرک خدای غیر از تو کی دارم؟ خب اگر این حالت ملکه بشه در جانم باورم بشه الهی و ربی رب منلی غیرک چه قربی از این قرب زیباتر؟ ای با خداست دیگه؟ خوب دقت کنی؟ ای با خداست چگونه با خداست؟ میگه غیر خدا دیگه راه نداره پاسبان حرم دل شدهم هم شب همه شب تا در این پرده بجز اندیشه تو یا او نگذارم دیگه پس دعای به این معنی وقتی وارد شد نماز به این معنی عبادت به این معنی توجه به این معنی غیر خدا رو از دل کنار میزنه وقتی کنار زد یهولو بین المرء و قلبه میشه خدا وقتی شد خدا این میشه قرب خدا این قرب وقتی به اوجش رسید قربم نسبیه دیگه لذا اتصال میشه به اوجش رسید میشه اتصال قرب میشه نسبی الان بنده به آقا نزدیکترم تا به آقا از نظر مکانی با آقا نزدیکترم تا به آقا اما وقتی دستمون تو دست هم دیگه قرار گرفت قرب در حد اتصال شد لغا می شود. من کان اگر لقا عرب بهی. در آغوش میگیرد ماده نیست ما لغا رو در عالم ظاهری خودمون همدیگه رو در بغل گرفتیم این رو که با هم دیگه میکنیم این اونقدر نزدیک شدیم مؤمن غربه به خدا به حدی پیدا میکنه میشه متصله به خدا متصل به خدا حدیث دارم میکنم اشد دوی تسالاً من شمسه لشمس تا به اینجا برسه یکی از این عوامل دعاست اما دعای به این معنی که از اعماق جانش این باور این اعتقاد این شناخت و این باور درست بشه که خدا غیر از تو هیچ وقتی غیر از تو هیچ بود دیگه بین من و او چیز دیگه ای؟ اگه بناس قرار بگیره چیزی هست که قرار میگیره. تا زمانی که غیر از او هست هنوز بین من و او مانعی وجود داره. هنوز بین من و او یه چیزایی دیگهی وجود داره. با اونجا میرسه که میگه هیچی نه. لذا اوجش میشه ابراهیم خلیل علیه السلام بعد از معصومین ما علیه مسلام که وقتی جبرائیلم میاد حدیثی که هفته قبل مطرح کردم میگه برو برو علمهو به حالی یکفیان مقالی. به اون حالت برسی که اون بزرگ نقل میکرد. کنار کعبه نشسته بودم داشتم نگاه به کعبه میکردم. کردم مشغول مشکول تواف بودن دیدم یک خانمی عرق ریزان اشک ریزان منقلب منو شناخت اومد جلو و من داشتم تواف حج واجبم و انجام می دادم حالم منقلب شد داشتم با خدای خودم نقمه عاشقانه سر میدادم. میگفتم خدا دوست دارم خدا آشقدم خدا چنینم حالا حج من درسته یا نمه ای عباراتو به زبان آوردم گرف. گفتم شاید از توفیل همین حالت حجت قبول باشه اون لحظه ای که بین خود و خدا چیزی حس نکردی حس کردی خداست. دعا خوندن خدا خوندن خدا که بین تو و خدا هیچی قرار نگیره بعد واسطه ای فیچی اینا را انشالله بهش میرسیم پس دعا یک تزلل عبودیت بندگی سرسپردگی دو وسیله قرب تا حد اتصال سه دعا دفع موانه تکاملی میکند. از کجا میگم؟ اول روایت شو رو بخونم؟ بعد با توجه به روایت اجازه بدید یک کمی توضیح بدم. جلد دوی کافی صفحه 468 بابی داره به نام ندعا سلاح المؤمن سلاح سین یعنی اسلحه. اسلحه دعا اسلحه مؤمنه صلاح با صاد نه سلاح با سین یک دوتا روایت رو سریع میخونم ترجمه میکنم بعد تو این وادی یه مقداری وقت داریم با هم حرف بزنیم دقت کنیم حدیث شماره یک قال رسول الله پیغمبر فرمودن الدعاء السلاح المؤمن دعاء اسلاحی مؤمن از امیر المؤمنین علیه السلام حدیث دوم الدعاء مفاتیح نجاه و مقالی دول فلا و فل مناجات سبب و نجا. مولا فرمودن دعا کلید نجات دعا گنجینه رستگاریست و فل مناجات سبب و نجا تو این مناجات ها تو این بگو ها دل شب با خدا اسباب نجات فراهم میشه حدیثش سوم از پیغمبر الا ادل لكم على من اعدائكم راهنماییتون بکنم دلالتتون بکنم به ی که شما را از دشمناتون در امان بداره حالا کم کم میخوام نزدیک بشم به اون منظور که دعا دفع موانع میکند شما رو یا ادل دلالت بکنم به یک صلاحی اصلایی که من اعدائكم شما رو از اعدایتون نجات بده قالوا بلا. قال تدوون ربكم بالليل و النحار. فَإِنَّ سَلَاعَ الْمُؤْمِنِ الدُّعَاء. شب و روز خدا رو بخونید. حسبی خدا بگید. خدا را بخونید که صلاح مؤمن دعاه. امیرالمؤمنین حدیث شماره چهار. دعاوت هر سل مؤمن. دعا سپار مؤمنه. سپار از حملاتی که میخواد به شما بشه. خطراتی که میخواد به شما وارد بشه سپار. ذکر میکنه دیگه حدیث شماره 5 از آقا امام رضا علیه و السلام فرمودن که امام رضا فرمودن پیغمبر به اصحابشون فرمودن علیکم بسلاح الانبیا شما رو شما رو با شما رو سفارش میکنم اصله انبیا رو از دست ندید ثقیل و ما صلاح الانبیا گفته شد یا رسول الله اصلاحی انبیاد چیه؟ قال دعا دعاس، تو دعای کمیلم میخونید ارحم من رأس و ماله البکا و سلاح و حل رأس و ماله رجا و سلاح و حل بکا بکا هم عنوان اصله در اینجا معرفی شده حدیث شماره ششم از امام صادق علیه السلام اند دعا انفزو نسنان، دعا از نیزه نافستره نیزه رو تو جنگ ها برای دفع دشمن به کار میبرن نیزه باید محکم باشه تیز باشه بزنی دشمن رو بیازاره از شما دفع کنه امام فرمودن دعا از نیزه برای دفع دشمن نافستره باز از امام صادق علیه السلام حدیث هفتم، از دعا انفزو من السنان الحدید دعا از نیزه آهنی هم نافذتره. حالا یعنی چی؟ این ما در مسیر تکامل و تعالی و سعادت هم باید اسباب و علل ایجادیشو ایجاد کنیم هم باید موانع خونسا کنندهشو کنار بزن این دیگه بحث عقلیه روشن مشخص اولیه است علت موجود مانع مفقود علت نباشه خب محلول ایجاد نمیشه علت باشه مانع مفقود نشه علت خنسا میشه از این جهت حتی حدیث میفرماید اجتناب و سیاد اولا من اکتساب الحسنات دوری گزیدن از بدیها که مانع خنسا کننده است اولویت داره از اکتساب خوبیها اولی جان دفع شرموش کن بعد از اون در جمعه گندم کش کن این مزرعه رو بنده میخوام در سطح این مزرعه گندم پرورش بدم بذر اصلاح شده دارم میپاشم اینجا این عامل محصر آب شیرین گوارای سالم توی مزرعه میریزم عامل محصر کود و مواد تقضیعی زمین رو به مزرعه اضافه میکنم عامل محصر ولی زمین رو خوب شخ نکردم چون بکاری در زمین اصل کار تا بروید هر یکی را صد هزار زمین شوره سنبول بر نیارد در او تخم عمل زای مگردان من زمین الان سفت سنگلاخ سنگریزه داره علف ارز داره چنین هی این بدر اصلاح شده آب چی آقا مانع داره مانعشو رو کنار بزن مانع چی؟ علف ارزاره بکن داریز دور ای سنگار رو جمع کن دور کن این درختایی که سبز شده اومده بالا شاخه ها جلو نور آفتابو میگیرن اینا رو هرس کن مانع رو کنار بزن بعد آب بده بعد کود بده بعد بذر رو در اینجا قرار بده ما در مسیر سیر الی الله و قرب به هم نماز ما رو میخواد اوج بده روزه میخواد ما رو اوج بده توجه به حق میخواد ما رو اوج بده اما یه چیزایی ای بال ما را مثل زنجیری به هم بسته اینا را قیچی کن هواپیما نیروی محرکه برای پرواز داره موتور هواپیما به قدری قویه الان وقتی کار میفته میتونه این هواپیما را با سرنشینان بلند کنه تو آسمان ولی با یک عوامل خنسا کننده این هواپیما رو به گونه‌ای بستیم به زمین هر چی موتور داره نیرو صرف میکنه این بستگی به نگهداری داره خنساش میکنه ما را یک سلسله عوامل نگه میداره تو عالم خاک نمیذاره سر از عالم پاک در بیاریم اگر چه برخی عوامل گرایش به سوی عالم پاک رو در ما ایجاد میکنه ولی معنی خاکی نمیگذارد ما رو تو توعاال خاک نگه میداره یکی از این عوامل دعاست لذا اصله به این معنیه یعنی دعا میاد شما را به عالم معنا به گونه ای مرتبط می کند. یک در عالم معنا قدرت معنا رو زیاد میکنه دو سیتره معنا رو بر ملک و مادی ایجاد میکنه هر دو حالا اجازه بدید تو هر دو یک اشاره کنم گرچه بحث خیلی دامنه دار و میتونه ریشه عمیق باشه نمیخوام وارد شوم اگه وارد بشم یک دریایی است تو روایات ما و توی آیات ما ولی اشاره میکنم خودتون ننایت بفرمایید یک آقا ثقائق عالم فقط مادی است الان یه مثال ساده میزنم ما یه جنبه مادی داریم هیچ جای بحثش نیست قضا چند روز به بدن ما نرسه دوچار مشکل میشیم بدن ماده است قضای مادی هم به بدن ما نرسه مشکلش معلوم تشنه بشیم آب نرسه بدن ماده آب مادی به بدن ما نرسه هوا به ما نرسه جسم مادی هوای ماده به ما نرسه مشکل داریم اینا جای خودش محفوظ اما ما میبینیم در همین زندگی روزمره ما یک سلسله حقایقی برای ما مطرحه میگه کسلم غذا تو چرا خوب کردم ورزشم خوب کردم خوابم هم خوب رفتم اما همینی که ناخداگاه میگیم روح ما خسته است الان روانشناسی شناسی روی این کار میکنه روانپزشکی روی این کار میکنه فلسفه در بود انسان روی این کار میکنه علم نفس روی این داره کار میکنه میگه چیشه طرف الان بحثی که در بیماری های افسردگی دارن تو دنیا داره خانمان سوز میشه و حاکزا این همه دانشگاه ها و دانشکده‌ها ها دارن روی مسائل مطالعه میکنن یه حقیقت دیگه ای ما داریم که اون بعد روحی وجود ماست همون گونه که جسم بیمار میشه و سالمه روح هم میتونه بیمار باشه و سالم باشه روح سالم سعه صدر داره غویه خم به عبرونه میاره هر چه به غروب آشوران از دیگتر میشد چهره امام حسین بشراشتر بود همه نوشتم زینب کبرا علیها جسم له ورده شده علامان نقل وقتی برگشتن به مدینه علامان نقل قل شوهرشم او رو نشناق این جسم اقتضای عالم ملکه ولی روح به قدریست حتی تو کاخ ابن زیادم قرار میگیره میخواد سرزنشش کنه میگه والله ما رأیت تو الله جمیلا همش عالی و زیبا دیدم شما از نظر همین ظاهری تو دنیای علمی خودمون یه جراح هشتاد ساله تجربه علمیش با یه جراح سی ساله قابل مقایسه هست خیلی قدر. 5 ساله 40 شما راهنمایی کن من انجام بدم تجربه علم آثار علمی او از این 40 ساله خیلی بیشتره نشات جسمی 40 ساله از او بیشتره اگر بنا بود این علم مال جسم بود و جنبه ما فوق جسم دخالت نداشت همونطوری که بدن فرسوده شده باید علمش هم فرسوده بشه این چیه که فرق میکنه؟ مالی یه بعد دیگریه دعا ارتباط روح با خداست دعا در عالم روحی وقتی به خدا مرتبط شد اون موانع رو برای تعالی روح کنار میزنه میگه روح داره به اون متصل میشه روح که به اون متصل بشه سعی صدر پیدا میکنه سعی صدر چه میشه؟ قدرت روحی قوی پیدا میکنه خود این دشمن رو یکی از عواملی که دشمن میتونه بر انسان غلبه کنه انسان رو ناامید کنه معیوس کنه روحیش رو بیازاره دوچار شکنجه روحیش بکنه این بزرگترین زندان هست از نظر اخلاقی میگن حسد قبل از این که محسود رو از بین ببره حاسد رو از بین میبره حرف خیلی قشنگیه حدیثه حسد قبل از اونی که محسود رو از بین ببره حاسد رو حسود رو از بین میبره چرا؟ برای اینکه خودی این حالات حسادتی که تو دنیای روح حسود داره ایجاد میشه داره بیچارش میکنه. نظر روحیه دیگه ولی وقتی روح بزرگه، روح قویه دعاهایش که روح رو متصل به با عالم بالا میکنه، وقتی متصل به اون عالم بالا کرد، این انسان از نظر قدرت روحی چه روحیه ای پیدا میکنه؟ شیشه دلان راست بیم سنگ حوادث سخر محابا ز سیل و سنگ ندارد لذا دعا میگه تو برگزاره به خدا کن برگزاره به خدا کردی خدایش بیا اون بزرگ چه زیبا میگفت و من نیتوکل الله فخو به اسبو آیه را میخون عشق میریخ میگفت توکل وکالت دادی دخالت نکن اگه وکالت دادی دخالت نکن دخالت میکنی وکالت نیست وکیل معناش اینه دعا به اینجا میرسونه حالا صلاح رو ببینید دعا به اینجا میرسونه خدایا تو اومدم سراغه خب تا زمان خدا جو پول دارم قدرت دارم امکانات دارم توان دارم پس هنوز خدامتصره نیست لذا اگر دعاست باید با توحید افعالی تو هم باشه توحید افعالی چیه عالیه اطلاق اوست اگر نخواد سنگی از جاش تکون نمیخوره اینو باید بفهمی باید اینو در مقام اعتقاد توحیدی نه به معنی جبره شرک نباشه جبرم نباشه بین این دو میشه توحید توحید افعالی به این معنی همه چی دست خداست اما همه چی دست خداست بر مبنای که خدا خواسته من باید حرکت کنم اگر به این صورت این انسان خواست حرکت بکنه میگه غیر از خدا هیچ غیر از خدا هیچ شد روح متصل به اون آلم شد روح متصل به عالم شد زندگی میشه معنوی دقت کنید زندگی میشه معنوی اگه زندگی شد معنوی ماده در مقابلش هیچ لذا هرگه صحبت حاضر قائب شنیده ای. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. ما معموریم تو این عالم ملک و ماده باشیم اون کسی که خدا رو قبول کرد دعا برگزاری به خداست خدا میگه به من برگزاریش کردی توکل کردی و دادی چشم حالا میندازم توی وادی تو این وادی که میندازم وادی وادی است که هر جا میخوایی بری برو اون لحظه که احساس کردی مولای مولا انت دلید و انل متحیه و حل یرحم المتحیر الا الدليل دیگه هیچ فقط تو انتال غنی و بعن الزعیف و حل یرحم الزعیف الا الغوی انتال غالب و بعن المقلوب و حل یرحم المقلوب الا الغالب اون وقت اگه خواست قنوت قنوط نمازشم این آیه رو بخونه با تمام اعتقاد باید بخونه رب اینی مقلوب و انت خیر و الناسري رب اني مسني الضر و انت ارحم الراحمين این از اعماق وجود وقتی برخیزه وقت این عالم میشه عالم سیتره معنوی عالم معنا اون احاطه عالم حتی تاثیرش در عالم ملک گاهی نشون میده یه بنده خدایی بود شاید گفته باشم چون من دیدم همون فردو دیدم هم عکسش رو دیدم این منده خدمتی بزرگی بودیم خدایش بیامرزه و هم فرود کرد این آقایی که همراه این بیمار رفته بود آلمان و برگشته بود از شاگردای اون آلم ربانی بود برگشت منغلب بود اتفاقا ما هم در خدمت اون آلم ربانی بودیم خدایش بیامرزه هر دوتا از دنیا رفتن اما اون آقا هنوز حیات داره آنیکی این قضیه براشت اتفاق افتاده که آقا جبونی تو فامیل ما قضیه مالش سی سال قبل. گفت که تو فامیل ما یه جوانی در اثر حادثه‌ای دو تا چشمش نابیناش ملک این بردن توی همه اثبای ایران و قیره و قیره عکس و من دیدم این دو تا عصبی که میاد به چش قرض شده گفتن هیچ کاری نمیشه کرد بردن آلمان حالا از در علم تبچیا من نمیدونم آقایون بهتر بلدم بهتر کی چی بلدم من که بلد نیستم گفتن که از نظر علم در شرایط فعلی به گونه‌ای ما کار نمیتونیم بکنیم این باید هم دو نابینا بمونه خدا شاهد الان یادم اومد یه دفعه متوجه شدم که در آستانه ولادت امام قضیه هم در رابطه با امام این است اینو فال نیک می‌گیرم امیدوارم به عنایت آقای امام رضایی امشب همگی برخوردار بشیم انشالله گفت تو آلمان به ما گفتن که آجون چشمی اینجا بودم دانشجو بودم دو تا چشم اینجا قرم شده عصبو نابینا آقا جون خاری فعلاً علم نمیتونه بکن باید بگید که خب تصمیم گرفتیم آروم آروم جوانو آماده کنیم آقا جون شما بناس نابینا بمونیم اومدیم خونه یکی از ایرانی ها که مهمون بودیم آروم آروم آرومش گفتیم جوان زد زیر گریه مطلع اصلا به مامرزه شد چون ایران بود و زیارت مامرزه زیاد میرفت ارادتی به مامرزه علیه السلام داشت گفت خیلی منقلب شد و از اونجا توسل به امام رضا و گریه و تو گریه هاش اینو به امام رضا عرض کرد که ای ابن رسول الله من ظرفیت ندارم اینجوری بمانم قبول میکنم من ضعف دارم نمیتونم مذهبی هم خودکشی هم نمیتونم بکنم ولی از شما خواهش می‌کنم یا شفای منو بدید یا از خداتون بخواید منو ببر من نمیتونم کور بمونم دیگه یکی از این دو تا به من بدید گفت ما رو منقلب کرد همه با گریه خوابیدی. این آقا که من از خودش شنیدم در حضور عالم ربانی گفتی وقتی دیدم که این جوون از خواب بیدار شده منو از خواب بیدار کرد پاشو پاشو من شدم آقا من خوابم یا بیدارم گفتم تو که منو از خواب بیدار کردی یعنی چی؟ گفتی من دارم میبینم باورم نمیشه که بیدارم یا خوابم میخواب میبینم خواب می بینم یا بیدارم؟ منم منقلب شدم چرا روشن کردم این چی دیدم؟ بله خب جمعیت رو بیدار کردیم و تا صبح با امام رضا بودیم اون شب تو آلمان همه منقلب صبح بردیم پیش پزشکو معاینه کردیم میبینه عکس انداختن یه عکس عرض کردم بنده دیدم بغل این دو تا عصب بالا داره طبیجم شما نمیدونم اینا رو من نمی‌فهمم دو تا عصب دیگه کشیده شده کشیده شده و شده اون که سیطره بر عالم داره مگه کاری براش گفت پزشک تا نگاه کرد این جالب بود گفت خیلی عادی پزشک گفت دیشب کلیسا رفتیم چون خیلی میدونن آخه گفتیم بله کلیسا ما یه جای دیگه است خب بله خدا خواسته. گاهی دعا شما رو تو عالم معنا نگه می‌داره. گاهی دعا سیطره معنا بر ملکو نشون می ده. می گه آلم ملک نشون میده. میگه عالم ملک، عالم ماده نسبت به عالم معنا چیه؟ دعا اصله هست همون طوری که در عالم بالاتر از عالم معنا عوامل تعالی در عالم معنا خیلی بالاتره. مانع عالم معنام خیلی خطرناکتره یعنی کسانی که میخوان سیر معنوی پیدا کنند وقتی به مراحل بالاتر از عالم معنی میرسند خطر اونجا براشون بیشتره شیطان اونجا بیشتر زون میکنه دعا برای اونجا اسلح است که اون موانع رو کنار بزنه دعا برای عالم ملک هم ابزار مادی رو بر مبنای سیطره معنا بر ماده فراهم میکنه این مجملی حالا اجازه بدید بقیه بحث باز بمونه برای هفته بعد انشاءالله چون وقت اجازه نمیده وقت خداوند گاهی میخواد نشون بده اونهایی که در این عالم قرب پیدا کردن اهل دعا بودن مغرب شدن به اندازهی که مغرب بودن متصل شدن به اندازهی که متصل شدن چی شد؟ آثاری که در اثر اتصال دارن نشون میدن انایت بکنید مثله و یه وقت بر من خورده نگیرید مثال ارزم میکنم. اینا هیچ کدوم در عالم مثال ماده اینجوری که مثل ایشی برای تقریب ذهن ارزم میکنم سریع آتشه میسوزونه و نور میده من دورم نزدیک میشم سنگم پارچم چوبم به اندازه قابلیتم و نزدیکیم از آتش میگیرم گاهی سنگم داغ میشم دست به سنگ میزنی داغه ولی بعد از مدتی سرد میشه گاهی چوبم در اثر اتصال با آتش خودمم یه پارچه آتش میشه میسوزم به اندازه ای که اتصال پیدا می کنن، این که شما می‌گید علی <تصفيق> <اللی> عضون <ازن> الله <ها> امام، ولی ی الله عین الله <ها> ید الله مشیت الله <ها> یعنی ش... در مسل مناقشه نیست بگردنه نمی‌خوام بگم یعنی در اثر نزدیکی با اون من نور <تصفيق> <تصفيق> الله اون نور و سماوات و رض <بالعرز> مسل و نوری کمشکار شده مسل اون نور لذا. آثاری که در اثر اتصال داره معصوم مادون مرسومه این هفته معصوم داریم امام رضا غیر معصوم عزت معصومه داریم علظاهر غیر معصوم از هر دو اون اتصال خلیفت اللهی امام رضا که همین جور عنایتش فیضان داره و اونم حضرت معصومه سلام الله علیه ها که امام رضا به او فرموده تو معصومه ای تو پاکیزهی، تو چنین و چنانی انایتی که حضرت معصوم سلام الله علیه ها میکنه در اثر اون قربی که دارن لذا همینجا من فقط عرض ادبی به این برادر و خواهر بکنم تتمه بحث بمونه انشاءالله برای هفته بعد ببینید هرچه قرب بیشتر شد حرص کردم دقت بکنید هرچه قرب بیشتر شد این که نزدیک شده قرب پیدا کرده به اقتضای درجه قرب و اتصال آثاری که از اون مبدا و منشئی که به او قرب پیدا کرده پیدا میکنه شما آثار حضرت معصومه سلام الله علیه ها رو به جهت اینکه دختر امام است خب امامان فرزندان دیگری هم داشت حضرت نو هم فرزند داشت جعفر کذاب هم فرزند امامه حضرت عبدالعظیم حسنی فرزند بلاواسطه امام نیست، با واسطه است، اما نسبت به بعضی از فرزندان هم نزدیکتر شده. اون قربی که پیدا میکنند اون آثار رو دارن همچنین عنایت میکنند و نشون میدن و به دیگران سرایت میدن. خب حضرت معصومه سلام الله علیها پیغمبر که دستشو نبوسیده. پیغمبر که نفرموده ابوها فداها امیر المومنین که نفرموده علی اول امام سید نفر نفرمود او رکن منه به اندازه قربش این آثار رو داره حالا مقایسه کنید با حضرت زحرا سلام الله علیه ها امم الا امتال نجباس حجت الله حججه. حضرت زحرا سلام الله علیه ها چند روز قبل عادت حضرت محسوم سلام الله علیه ها بود تلویزیون هم نشون میداد شاید دیدید از نزدیک همونایی که قوم مشرف بودن دیده باشن حتی دختر بچه های مدارس هر کدوم یه شاخ گل به دست دسته دسته وارد هرم حضرت می میشدن ای شاخ گلا رو میداختن رو زریح حضرت محسخومه عرض عدد میکردن نوعی مثلا خیر مقدم که به شهر ما وارد شدید به شهر ما خوش آمدید ما داریم از شما مثلا عرض در مشهد یازده زیغره چهارشنبه که ولادت امام رزاست هر سال این کار رو میکنن ابتکار است که این کار میدن به جوونا. معمولا نوجوانا محسلین مدارس شاخهای گل به دست میگیرن من سفری هم مشرف بودم دیدم انقدر گل بارای زریح و پایین میریزن که به یه معنی میشه گفت که این ذریح رو میخوان تو گل دفن میکنن یعنی آقا جون دو سپون داریم عرض عدب میکنیم از ما کاری بر نمیاد اما نمیدونم با زهرا سلام الله تو شهرش تو خانهش تو خانه پیغمبر تو مدینه چه کار کردن که فقط با اشاره بگم ایام حیده علی جون شبانه مرا آغوز کن شبانه مرا کفن کن شبانه مرا دب کن اهدی رو مطلع نکن الانم شما بعد از قرنها به تمام اماکن مذهبی مکه و مدینه سر میزنید یکی دختر پیغمبر باقی گذاشت همه بعد از پیغمبر و خود پیغمبر به این دختر مینازیدند و به او افتخار میکردن. اما اثری از او ظاهر پیدا و آشکار نیست خدایا. تو را به جان فاطمه معصومه و تو را به مقام علی ابن موسی قسمت قسمت می دهیم اتصال و ارتباط و معرفت بین ما و خودت را روزافزون بگردان